دانی که چنگ و اود چه تغریر می کنند پنهان خورید باده که تعذیر می کنند ناموس عشق و رونقه و شاق می برند جوان و سرزنش پیر می کنند جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر می کنند گویند رمز عشق مگوید و مشنوید مشکل حکایتی است که تغریر می کند ما از برون در شده مغرور صدف فریب تا خود درون پرده چه تدبیر می کند؟ تشویش وقت پیر مغان می باز این سالکان نگر که چه با پیر می کند صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید خوبان در این مامله تخسییر میکنند قومی به جد و جہد نهادند وصل دوست قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند فل جمله اعتماد مکن بر ثبات ده که این کار خانه‌ای است که تغییر میکنند می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنن.